آدرود خدمت بینندگان گرامی و با سپاس از مسئولین و مجیان عزیز تلویزیون بنگین کمان بخش هفته همه برنامه کستوی رو بدیم وسیله شروع میکنیم در بخش قبلی در مورد فاجعه و جنایتی در باره یک زن جوانی به نام شهر بانوز رو گفتیم و از قلم کسوی نیز این مطلب رو خواندیم، مطالعه کردیم با هم دیگر و در این بخش ادامه می دهم تا ببینیم بلاخره زندگانی کسوی به کجا خواهد بسید بله کسوی وقتی از مشهد حرکت میکنه شبش به شیربان میرسه و به محض اینکه به شیربان میاد در همون ساعت اولیه یا فردا صبح اقامه دعوا میکند بر علیه کسانی که مقصر بودند در گشدار این زن جوان و چهارتن از این مغصرین رو بازداشت میکنه که عبارت بودن رئیس دارایی رئیس شهربانی، نایب صادق همون که نظر بدی نسبت به شهرمانو داشت و حسین زندانمن قرار بازداشت به صادر صادر میکنه و را به دست نماینده شهربانی به نام نایب بریسخر داده و به همراهی یک جاندارم به, به دستگیری آنان میفرستد و خلاصه مسئله رو حل میکنه کسوی جزء کارهای خودش یک مطلب یشاره کرده میگه من اون ارمنی رو که میفروش بوده اون رو هم به انوان دستور دادم بیاد و دیده های خودش رو بگه و در این باره مینویسد که اون شب ارمنی گفته که اون شب که صادق همون قاتل شربانو آمد و کرد و آن سخنان را گفت من پندش دادم و گفتم شما مسلمان ها که سنگ دل هستید مگر آدم را هم شکنجه می کنن گلا این مرد نمی دونسته که ما مسلمان ها سنگ میکنیم می کنیم آدم ها رو می کشیم آدم ها رو به همین راحتی به نام اسلام به نام دین البته این مقدارش بین پرانتس بیان بنده هست رمکه ملترس هست باری ادامه میداد کسری میگه من به او گفتم شما مسلمان ها چه سنگ دل هستید مگر آدم را هم شکنجه میکنند ولی به پند من گوش نداد کسری پس از سه روز که در شیروان معموریت خودش رو انجام داد و کارها رو براه کرد برگشت به مشت، حرکت کرد به مشت. در راه این مشهد هم یک مشکلاتی، یک مسائلی رو بررسی کرد از مردم که واقعاً مطالعه جالبیه میگه که مردم که آوازه یه. مرا شنیده بودن که به انوان داستان وزارت عدلیه از تهران آمده در راه منتظر من بودن گویا در راه یک باقی در اختیارش میگذرن از طرف عدلیه و او در اونجا سکونت میکنه برای یک شب میگه مردم ریختن جلوی در زاری میکنن ناله میکنن شکایت میکنن مملکت همه شاکی هم در اون مملکت همه شاکیه هنوز هم. هم حالا هم شاکیه ست سال گذشته ست سال گذشته نواکان ما اشتباه کرده بودند که تصور میکردن وضع ما بهتر میشه وضع ما خرابتر میشه با این تشیع و با این اسلام بدتر میشه و شده نشانش میگه مردم آوازی آمدن یک فرشته نجات را شنیده بودند و همگی در مسیر من جمع شده و شکایت پیش من بردند پس از فرود در باغ یکی از ناموران چون این می نویسد تازه به باغ رسیده بودم و نهار آماده شده بود که گفته شد مردم در بیرون در بیرون در انبوه شدند من خود بیرون آمدم یک دسته از حال و بدبختی که می داشتند و از ستمهای ستمگران که در این کشور فراوان است می نالیدند. یک دست از نبودن عدلیه شکایت کرده میگفتند گفتند عدلیه که بسته شده در اون تاریخ میدونیم که عدلیه رو داور بسته بود عدلیه که بسته شده از مداخلات حکمران و جاندرمری شکایت داشتند. دینک کرسوی معمولیت شیربانش رو به پایان رسیده و به مشهد برگشته و گزارشات لازم رو در اونجا انجام داده وزارتخانه ارسال داشته و پس از رسیدن به مشهد منتظر بود که اجازه بدهند رخصت بدهند تا برگرده سر کارش ولی آنها همونطور که در بخشی گذاشته از کردم چنین نظری نداشتن نمیخواستن کسوی کس رو برگرد سر رست قبلیش میگه همان روسلگرافی الگرافی رسید روزی که رسیده بمشد <تصفح> که شما در آنجا بمانید و ما کارهای دیگری با شما داریم خب روشنه که میخو... نمیخوان برگرده و باز همان روز تلگراف دیگری رسید به شرح رسید علمای غوچان در تلگرافخانه نشستند و از حکمران آنجا شکایت میکنند شما غوچان رفته رسیدگی کنید کسوی می نفسد که البته من می توانستم یه جواب به بلند بالا و سربالایی به اینا بدهم و برگردم ولی تون گوچان جای نیکی بود آب هوای خوبی داشت تصمیم گرفتم که در ضمن ماموریت یک استفاده ای هم از آب هوای قوچان و نیز مطالعه ای در این شهر انجام بدهم به همین دلیل به مدت دو هفته این موقع برمی گردد به کوچان و با دو تن از همراهان خود، این شهر آزم میشه در گوچان قبل از اینکه ایشون برسه اداره ادلیه یک منزل آگ رومندانهی برو گرفته بودن پس از بررسی کارها معلوم میشود که برکران گوچان همانطور که رئیس ادلیه شیربان رو گفت کسری برکران گوچان به خاطر و های فراوان و فراهم کردن زندگی باشکوه و هزینه زندگی زیاد دست به فساد زده و از مردم رو گرفت است حاکم به کسوی پیام فرستاده بوده به شخصیت نوشته من در لال بانک روس می بودم و در بسیار می داشتم. بانک از میان رفت و من ناچار شدم که کارمند دولت باشم ولی من آبرو دارم زنم شاهزاده است من که نمیتوانم با ماهی 100 تومان اندی زندگی کنم به پاس آبروی خود فول های گرفتم خب این آدم حالا کشندگی هم اشاره میکنه این افراد و گروه زیادی از افراد ما تصور میکنید که آبرو ظاهره دزدی گرفتن اشکالی نداره روشت بگرفتم ولی من اگر فرش خوبی داشته باشم زندگی خوبی داشته باشم دیگران ببینن این آبروی خوبیه کسایی <تصفی> <تصفی> می نویسد نوشتم این فلسفه بسیاری از ایرانیان است آبرو را رخت گرانبها و صفری رنگین و خودنمایی های معنی میشناسند کسایی <تصفی> پس از بررسی کامل و وضعیت گزارشی از دیده های خودش و بررسی های خودش به وزارت عدیه میفرسته و مدت دو هفته در گوچان استراحت میکنه و مطالعه میکنه همونطور که گفتیم یکی از مطالعاتش بررسی شهر قدیمی گوچان بود در گوچان زلزله شده بود و از بین رفته بود دولت، حکومت یک شهر جدیدی در کنارش ساخته بودن و کس سوی میخواست بداند که در قوچان قدیم چه گذاشته و در اینجا مطالعه کرد دو هفته گذشت برگشت باشد میخواد برگرده مرکز مرکزی اجازه میده. خودش مینویسه میگه من چهار تلگراف به مرکز فرستادم که من میخوام بازگردم و رخصت خواستم که به تهران بازگردم چون پاسخ تلگراف چهارم چنین بود آ بی اجازه حرکت نکنید من در جواب تلگراف تلگراف پنجم را چنین نوشتم وزارت جنگیلی آ دیگه بی اجازه حرکت کردم و این رو می نویسه سوار ماشین میشه میره مرکز مطمئن میگیره و با اطرافیانش میره مشک میره تهران یه مطلبی هم هست که در اینجا وقتی میرسه به تهران یه مطالعه ای کرده و نوشته که جالبه منم باید اینجا بنیسم و این روحیه دوستان ماست، اطرافیان ماست، زندگانی ماست، ایرانیان ماست، همهمونه. همونه چرا میترسیم از گفتن؟ باید بگیم ما آدم های متملقیم اغلب یعنید چی می نویسه میگه در تهران که من رسیدم همکارانم هم اطرافیانم هم شروع کردن دلسوزی بیخود کردن که شما نباید این کاره می کردید هیل شکه کردید شما با بزرگ دستانم باید در شما آقابت چی میشه؟ میگه این مطالب رو مرتب به گوش من میخوندن یه جواب دادم اغلب جواب میدادم در این هنگام مرا آن آن میبایست که گردن به زور زورورزی داور نگذارم و خود را از خاری بیرون آورم که کردم اندیشه کار را سپس خواهم کرد در این میان هم باز تیمورتاش یکی از دوستان نزدیک کسری بود یکی از خامیان نزدیک کسری بود تیمورتاش احضارش میکنه و به او میگه که شما بیا عضو حزب ایران نو بشو و برو به عنوان داستان مشهد در مشهد ملایان کردن کلوفتی میکنن برو با همه اینا در بیفت اینا را سر جای خودشون بشون دنشان کسری قبول نمیکنه و به عنوان اعتراض علی رغم اصرار عدلیه که می‌خواست دوباره برگرده سر کار استعفا میدهد و کار وکالت وکالت دعاوی به عهده و به مدت یک سال از کسدی از وزارت عدلیه دور میشه از کارهای رسمی که داشته دور میشه. و جالب است که میگه این کار وکالت از نظر مادی خیلی خیلی بیشتر و بهتر از کارهای اداری بود خود نمیسد که وکالت را که آغاز کردم نیک بود و بیش از داوری یعنی غذاوت در آمد داشتم این بود که توانستم فرش ها و کارچال ها کارچال ها و ساید خونه منظور کارچال های خرم و رنگی به خانه خود دهم ده و سپس اضافه میکنند این برای من فیروزی می بود ببینید غرور این مرد را این برای من فیروزی می بود که خود را از زیر بار زورورزی مردی همچون داور بیرون آورده بیکار هم نمانده بودم. باز به یک مسئله اجتماعی اشاره میکنه که ما این مطلب رو باید در اینجا بررسی کنیم بگی در تاریخ در تاریخ دی ماه 1307 مجیس هفتم قانونی گذارنده بود بر آن لباس رو مقتدل شک کرده بود لباس مقتدل دوبار شده یک بار در زمان 1313 هست که منجر به واقعی مسجد گوهرباب شد و بار اول در این تاریخ است که این پیشنهاد تیمورتاش ای بود کلاه پهلوی داشتند در اون تاریخ فرق کرد خداش کلاه پهلوی داشتند و لباس یکسان این قانون رو که در مجلس تصویب کرد باز یکی از ازلاحات نیک رضاشاه بود این قانون در این هدف بر علاقه بر نظم جامعه که میخواستن مدرنیتی که میخواستن بذارن در این هدف قرار گرفته بود انجام شده بود که میخواست نبض انتخاب ملار رو دولت در اختیارش بگیره. و اصل دوم این قانون که تصویب شده بود مربوط به این کار می من در این باره یک اشاره کوچکی میکنم. اصل دوم طرح عبارت از این بود به هشت ماده داشت ماده دوم طرح اعلام می داشت که طبقات هشتگانه در زیر از مقررات قانون مستثنا هستند. یک مشتدین مرجعی تریخت یعنی اینا میتونن لباسشون حفظ کنن لباس سنتی خودشون رو حفظ کنن یک مشتهدین مرجعه تقلید دو مراجع امور شرعیه دهات سه فقیهان اهل سنت و جماعت چهار پیش نمازان دارای محراب پنج، مهدسین مجاز، شش، طلاب محصلین فقه و اصول که از درجه امتحان برایند. اینو یادمون باشد من در این بارز رو برد میکنم. طلاب محسلین فقه و اصول که از درجه امتحان برایند. یعنی امتحان بدن. هفت، مدرسین فقه و اصول و حکمت الهی. هشت، روحانیان غیر مسلم. روحانیان غیر مسلمان. این اصل دوم که من عرض کردم اصل ششم که حضورتون عرض کردم طلاب باید امتحان بدهند در حقیقت تا اون تاریخ طلبه در حوزه امتحانش میداد و طلبه میشد و بعد به مقام لای می رسید و بعد ادامه میداد ولی دولت آمد گروهی رو تعیین کرد غیر مullah این افراد به اصطلاح گروهی تشکیل شدن که امتحان بگیرن آدم های بودن عدیب بودن که در توشون تصادفا ملا نبود امتحان بگیرن از کسی که میخواد بشه طلبه اگر از این امتحان پیروز میومد موفق میشد قبول میشد خیلی خوب لباف میکرد میرفت دنبال ملای خودشو یک روزم ملا می ولی اگر رد میشد از این امتحان دیگه اجازه نداشت لباس سنتی روحانیت بپوشه مثل دیگران باید کلاه پهلوی و لباس نپوشید و در جامعه از این بابت بود که دولت و حکومت از این تاریخ به بعد انتخاب ملا رو هم در اختیار گرفت یعنی این ای گروه ممتحن بودند که مختار بودند که چه کسی رو به انوان مولا تحقیل جامعه بدن و این یکی از رفتاری بود که شاه در مقابل مولایان انجام داد واسکستانی در اینجا از درباره همین لباس متدر شکل به یک واقعی اجتماعی اشاره کرده و داستانی از کارشکنی مولایان و مخالفت آنان با این قانون می نشد میگوید که در همان زمان تقریباً وقتی قانون لباس شک از مجلس میگذره این آدم خاصیه قانونیه بلا فاصله لباس رو عوض میکنه و اون لباسی رو که حکومت تعیین کرده اونو میپوشه فقط میگه چگونه ملایان با این با این حکومت با این رضا شاه مبارزه میکردن مخالفت میکردن در همان زمان روزی در کتابخانه مجلس کاری داشتم روانی آنجا گدیدم. در آن روزها یک دسته از کارمندان عدلیه پیش قبل از اینکه که منحل بشه از داوران و دیگران که کاری به ایشان داده نشده بود در بحارستان بس می که یکی از آنان ناگهان جلوی مرا گرفت که از میره به سوی کتابخانه مجلس گروهی در جلوی مجلس بس نشستند. یکی از آنان که ملا هم هست جلوشو میگیره ناگهان جلوی مرا گرفت و چشمهای خود را به روی من دوخته گفت بهتر بود رعایت دین میکردید. و این رخت را نمی پوشید. و این جمله را با لحنی که کینجویی و سرزنش از آن میبارید به زبان آورد و من چندان براشوخدم و به تکان آمدم که خودداری نتوانستم و کسانی را که از غازیان در آن نزدیکی نیستادند آواز زدم آی فلانی آی فلانی بیایید بیایید که ملا باغر دم از دین میزند این ملا باغر ما در آینده خواهیم دید این دی بوده ملا دزدی بوده گرفتن و محاکمش کردند این ملا دزد داره امرو نه میکنه به کسی که دستور حکومت رو قانون حکومت رو به درستی انجام داده ببخشید. باری یکی دیگر از کارهایی که در این مدت کسری در مدت فرصتی که به دست اومده انجام داد یادگیری زبان ارمنی بود او در طول دوران وکالت دابعی خود از زمان بیکاری شروع کرد و در طول دوران وکالت خودش یادگیری زبان ارمنی کرد این زبان میگه از نظر پجورش های کسری به او کمک فرابانی کرد. زیرا خود میگوید در رشته هایی که دنبال کرده بودم ببخشید. در رشته هایی که دنبال کرده بودم از تاریخ و زبانشناسی خود را نیازمند دانستن آن زبان میدیدم. به تاریخ و زبان آذربایجان که از هر باره بستگی به تاریخ زبان ارمنستان می‌داشت می‌دونیم که یکی از بهترین مطالعات رو کسری در مورد آذربایجان انجام داده در تاریخ 18 سادیه آذربایجان کسری توضیح می‌دهد می‌نویسد که زبان ارمنی دو تا است یکی زبان کوهن ارمنی است یا گراپار می‌گن به زبان ارمنی و دیگری زبان جدید است که اشخرابار می‌نامند. میگه هر دوی آنها دشوار است من نیاز بیشتر به گراپار داشتم زبان کواهن داشتم که دشوارتر می باشد یکی از مطالعاتی که در این دوره وکالتش انجام داد که سری کتاب معروف کارنامه ارتشیر بابکان بود از زبان پهلوی به زبان فارسی که بعدها آن نیز به چاک رسید بنده بخش هفده گفتارم را در اینجا به پایان میرسانم امیدوارم که در بخش هجده ما دوستان عزیز من دیدندگان گرامی من همچنان با وفا باشند و با هم به دنبال زندگانی کسی زوی قدم به قدم گام برداری روز خوش